بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأنا وصحبي أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنا فاء ويقيموا الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين قيمة فدليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى وللله على الناس حج البيت من الصفاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ما كفتم ك مزمل مطالبك لا مدرم يخونين بحث تعريف إسلام إسلام شيء شهادتين ما بحث إلى شهادتين بحث یک تا و بحث معنای کلمه توفید معنای کلمه لا الله رو گفتیم بعد معنای کلمه شهادت انم محمد رسول الله رو گفتیم توضیح داریم در دو جلسه یا در یک جلسه توضیحش داریم بعد از شهادتین الان رفتیم به بحث نماز زکات و روزه و حج اون اعمال ظاهری که هر مسلمانی باید داشته باشه اون اعمال ظاهری که باید هر مسلمانی داشته باشه اگر اون اعمال رو نداشته باشه اسلامش زیر سوال میره یعنی خداوند حد حداقل چیزی که از یک مسلمان خاصه این اعمال ظاهریه حداقل چیزی قالت اعراض و امنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا اسلمنا اعراف که ما ایمان داریم خداوند میفرما نگی که ما ایمان داریم بگید که ما مسلمانیم این حداقل حد اسلامه حداقل حد مسلمونی اینه که ما شهادتین رو بگیم نماز رو بکنیم روزه رو بگیریم و و در غیر این صورت ما اسلام مزیر استعال میره یا دوچار نقصان کمال واجب میشیم یا نقصان یا اصل ایمانمون از بین میره یعنی در در صورتی که شخص شهادت ربه بگه و اصلا نماز نخونه در بین امت شکی نیست که این شخص اگر توان نماز خوندن داشته باشه و عذری به جنم نداشته باشه یعنی جاهل نباشه چنانچه در حدیث فریضه آمده که کتص بی تعلمه نه کنه نمازینه روزیه و میگه که لا الله به دادش جاهل نسبت به چی؟ جاهل نسبت به احکام به شریعت، احکام خداوندی از نماز موزه، اون شخص معذور، اون شخص خداوند او رو می‌بخشه به خاطر جهلش. یا به خاطر جهل، یا به خاطر عجز، یک شخص مسلمان میشه و بعد با کلمه لا الله از دنیا میره. مثل اون شخصی که اسامه کش سرشو زد وقتی که لا اله الا گفت، قال اشتقت عن قلبي او قلبی شکاف دادی. شخص فرصت پیدا نکرد که نماز بکنه این اشخاص به علیتالله ما بحث ممانع تکدیر که چهارتا داریم در صورت که این چهارتا مسئله نباشه بحث در جه بحث اکراه و بحث عجز درست و بحث اشتباه چهار اشتباه بکنه تأویلی داشته باشه کسی نگه بهش چیزی نمیدونه حالش نیست که نماز روزه چیه بهش هر چند که بگی ولی بله خب لای و شرک اکبری هم نداره یعنی, م... یک شخص... یعنی اون شخص به یکی نخلی شاید بهش عز بدیم یعنی که اون رو از اسلام خارج نکنیم. چنانچه خیلی شبهات پیش میاد مثلا در خیلی از روستاها، خیلی از جاهای دورافتاده یا حتی در شهر، شخص. یک شخصی مثلا زنی ازدواج میکنه با یک مردی که اصلا نماز نمیکنه. الله آلا شکم شیه آیا ما طلاق بدیم آیا بچه هاش این مسائل پیش میاد. بخاطر همینی همین ممانع تکفیر علما گذاشتن که دیگه سبب نشه ما زندگی را از هم به یا تهمت زنا به اونها بزنیم یا هاشون زنازاده خطاب بکنیم این مسائل یعنی علما در نظر گرفتند در بحث نماز خصوصا که مهمترین رکن ارکان اسلامه رکن اول شهادتی بود رکن دومش نمازه است که رسول الله صلی الله علیه و سلام بین یک شخص مسلمان و بین یک شخص کافر نماز و چنان صحابه نه می‌تونند، چنانچه طبعی نه می‌تونند. از صحابه که صحابه چیزی را کفر نمی‌دونن، جز نماز، یعنی کفر اکبر. حالا هرچند که اختلاف بین ائمه در بحث این که چیزی را کفر می‌دونن، آیا کسی که مطلقاً نماز را رها بکنه یا یعنی اینکه نه گاهی نماز را رها بکنه و گاهی نکنه. گفتم در کسی که مطلقاً رها بکنه شک در کفرش نیست. چنانچه علمنیم این بحث رو اما بحثمون در مسئله ای که شخص گاهی نماز بکنه گاهی نماز نکنه. که نظر ایمهی جمهور اهل سنت از شافعی و ابو حنیفه و مالک بر اینه که شخص که نماز را از قابل کسالات اگر رها بکنه اون شخص کفرش کفر اکبر نیست بلکه کفرش عملی هست اما نظر امام محمد رحمه الله میبید کسی که نماز را یک نماز را عمدن از وقتش خارج بکنه اون شخص آخره یعنی عمداً اگر کسی بخند نماز ما غیر را نخون تا وقتا این شخص هر را نماز نقمت رها کرده و معذور نیست و اون شخص کافره، باید توبه نصوح بکنه و دوباره شهادتین دیگه و با وارد اسلام بشه چون کفرش کفر اکبره. گفتم این خلاف بین ائمه اهل سنت هست نه امام احمد و اتباعش میگیم خارجی و نه هم به جمهور میگیم مرجعی چون این اختلاف از قدیم بوده. متاسفانه کسانی که ظرفیت علمی رو ندارن ما بینیم در جامعه امروز در اینترنت اگر شما بخونید خب مثلا میان میگن که البانی چون گفته مذهب امام شافعی و احما امام شافعی و ابو حنیفه و مالک رو ترجیح داده پس البانی مرجعی هست. خب میان میان حمله میکنن کتاب می کتاب ظاهره الارجا کتاب نمی فلان می نویسن در بحث اینکه البانی مرجعیه چرا چون تارک الصلا و برکت الصلا رو تکفیر نکرده میان توهین میکنن از طرف دیگر کسانی که میان از البانی دفاع میکنن متهم میکنن به خصوص میشون به اونهایی که باهاشون مخالفن در اون فکرشون میان تهمت خارجی بودن را میزنن این کار کار درستی است هر دو تا فرق علایمه علی سنت است و اختلاف نوعه و تا حالا نبوده در طول اسلام که بر شخصی چون یک نماز را ترک کرده حکم مرتد اجرا بشه یعنی سرش رو کردنش رو بزنن و بگن که تو مرتدی اما ادله‌ای که اینجا آورده بر تایید حدیث جبرئیل در تایید ارکان اسلام پنج دانه غير الشهادتين دليل بر نماز و زكار فرمودية والدليل و دليل الصلاة والزكاة و تفسير التوشيك مشهادتين قوله تعالى وما امروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين بحث شهادتين كلا زماش وما امروا إلا ليعبدوا إلا ليعبد من كير وبرسلان الله يكتاب إلا ليعبد لا إله إلا الله درسل وما امروا إلا ليعبدوا إثباته دستیور دا داده دا نشودن مگر یا جز این که الله یکتا را بپرستند بحث تفسیری کلمه لا اله الا الله بچی بعبودیات بعبادات و ما امرنا لكم ابناشدت ان هدف الخلق انه ما خلق الجن والانس الا ليعبدون جن اسف قد نکر مگر برای عبادت بس اگر خداوند دستور میده که ما او را بپرستی عبادت بکنیم به خاطر اینه که هدف خلقت ما بوده عدم از خلقت مون عبادت یک یکتا بوده که اینجا بدنیات از جمله ها نماز یاد میکنه و زکات یاد میکنه و ما عمر الا لیعبد الله مخلصین لهودی اونم خالصانم من عمل عملا اشرک معی فيه غير و شرک خداوند شرکش که اگر عمل انجام بده شریک به خدا قلب بشه نظر بکنه قبلا بحث شد نزب بکنه به ای زبش بکنه به مردی به اسم مردی اون زبش اون عبادتش شرک اکبر و مخرج از مله هست این دیگه اون عبادتش خالصانه نیست شرک در این عبادت برای خدا قائل شده کسی که در دعاش برای خدا واسطه قرار بده اون دوچار شرک اکبر شده در دعایش اگر واسطه قرار بده ما چون دع... دع... خدا بند از این منخواسته امن کرده در دعا و در دیگر ها که دعا یک جزی از عبادت دعاو و عبادات دعا جزی از عبادته و ما های دیگه از اعمال قلبی داشتیم ترس نمیدونم رجاء و محبت و دیگر چیزها اینها باید خالصانه برای خداوند یکتا باشه یعنی باید اخلاص داشته باشیم خالص بکنیم خدا بر را در این عبادت ها چه های بدنی چه های قلبی مخلصین له و دین. یعنی دینمون خالصانه برای خدا باشه حنفا حنیف کسی که مائل از شرکه است مائل از گناه مائل از بدعت است که تابع وکلم لازمه شهادتین چی بود لازمه یک تا قرار دادن خداوند یک طرف اخلاص و بعداً متابعت از رسول الله صلی الله علیه و لازمیه اشهد ان محمد رسول الله این دو تا این دو تا باید با هم دیگه باشن در یک عبادت تا اینکه ما یک مؤمن حساب بشیم اگر اخلاص نباشه و متابعت نباشه و الاسلام قبل قبول نیست منافق داره له الدين حنفا خالصانه یعنی خدا باشه وحنيف حنیف باشه یعنی حنیف یعنی مائل از بدعت ها و شرکیات مال خدا باشی اون راه مستقيم یک راه هذا صراط مستقیم فتبعوه ولا تتبعوا السوء دیگر راه های دیگه راه رسول الله صلى الله عليه وسلم salam به بهمون گفتند و بیان کردن اون راه رو بگیریم از جمله این راه راه حنيف و راهی که باید درش اخلاص داشته باشیم نماز بر داشتن نماز و یقم الصلاه بحث اقامت نماز و یقم الصلاه نکف صلو او و ادو الصلاه نه بحث اقامت نماز اقامت بر داشتن نماز بر داشتن یک قسمتش بحث به وقت خوندنشه که بین منافق و بین مسلمان تفاوت واضح و سریعی هست در بحث برپا رسول الله صلی الله علیه و سلم می از صفات منافقی اینه که نماز عصر و نماز فجر نیاد از صفات منافقین. اینه. و خدابندم در قرآن یاد میکنه ایده قام و قام و کسال اگر به نماز بلند بشن از با کسالت بلند میشن. این بس یک منافقه که نماز را برپا نمی‌داره، در وقتش نمی‌خونه، صفت مؤمن نیست. رسالت مؤمن اقامت نماز در وقتشه و اقامت نماز چنانه که رسول الله صلی الله علیه و وسلم انجام داد. صلوا کما رایتونی اصلي. نماز بخوانی چنانچه من نماز می‌خونم. اگر کسی نماز اون سر به سجده گذشت، سفر عهرو بر گذشت ولی حق نماز را ادا نکرد مثل اون موسی الصلا اون کسی که نمازش در اساءت میکرد در نمازش، اون کسی که اشتباه میکرد در رکوع و سجده‌هاش چنین یعنی رکوع و سجده را برپا نمی‌داشت. مثل یک خروع سر و یک مثل یک مرد سر بزنیم میذر رسول الله صلی الله علیه وسلم بهش از اعد صلاته نمازی رو دوباره بکن چرا نماز نمازی دوباره بکنه مگر ربو نداش مگر سجد نداشت بله داشت بلی برپا نمیداشت یعنی چنانچه خدا ازش خواسته بود که خشوع در نماز داشته باشه و حق نماز را عدا بکنه اون شخص حقیقت نماز چنانچه خدا ازش خواسته بود و انجام نمیداد. به خاطر همین نمازش پذیرفته شده نبود رسولات صلی اللہ علیه وسلم بهش دست دادن که دوباره بخون دوباره خون، هی گفت دوباره بخون اومدن رسولات صلی الله علیه وسلم بعد بهش گفتن که مشکل نمازش چیه پس برپاداشتر نماز، نماز چنان خدا بند از اون خاص به اقامت نماز برپاداشتر نماز به وقتش چون بین کافر و مؤمن اینه که شخص تارک نماز نباشه نماز رو ترک نکنه که از وقتش خارج بشه و فرق بین منافق و مؤمن در اینه که منافق به مسجد نمیاد ولی مؤمن باید به مسجد بیاد نماز بخونه پس بحث عدم ترک نماز عدم ترک جماعت اینا همه تفاوت‌های بین مؤمن و بین منافقه و بین اون مؤمنی که نمازشو درست نمیخونه و اون کسی که درست میکنه که قسمت تایفون بود اگر واقعی به جماعت نماز خوندی نمازتو درست بخون خشوع در نماز داشته باش تا اینکه نمازت پذیرفته شده بشه و حقیقت اقامت نماز بهت محسوب بشه ویقیم الصلاه و یؤتوز زکا و زکات را بدن اول عبادت بدنی بود الان عبادت مالیه اون مالی که خداوند بهت داده وظیفته که اون مال قسمتی از اون یک چهلم اگر طلا هست اگر نقره هست یک چهلومش رو را در راه خدا بدی حالا تقسیماتی که خداوند کرده به فقرا و مسلماندان و نمیدونم عاملین علیه ها اون, حش... اون حشخنفی که خداوند حق زکات را بهشون داده جای خودش بس بس اینه ما مکلفیم در ایزای ایمانمون در ایزای شهادتین زکات ما رو بدیم و ذلک دین القیمه یعنی این دین دین مستقیمیه، این دین دین مستقیمی در صورتی که ما نماز رو برپا نداریم در صورتی که ما زکات مالمون ندیم در صورتی که ما اخلاص داشته باشیم متابعت نداشته باشیم این دینمون نه دین حنیفه نه دین خالص و نه دین مستقیم و محتمیه دین مستقیم و محکم برقاداری اینها هست این از ایمانه این امر خداونده و ما عمرو الا لیعبودیم لازمه توشید لازمه کلمه لا اله الا الله کلمه معبوده بحقیم الا الله هست لازمه اینه که اینها انجام بشه اخلاص متابعت برقاداشتن نماز و بر فادرستان زکار یا انجام دادن زکار هرچن که روزه هم هست به دلیل دیگری غیر از این آیه خداوند تشریع کرده همونطور که هرچند که ما در حدیث هم حدیث داریم و دلیل الصیام قول تعالی یا ایوها الذین آمن و کتب علیکم الصیام یا ایوها الذین آمن و خطاب به مؤمنین ای که ایمان رو اون کسانی که کس خداوند را خالصانه میپرسید و نماز رو برپا می‌دارید و زکات رو انجام می‌دید توی لازمه ایمان اینها هست روزه هم بر شما نوشته شده یا ای الذین آمنو كتب علیکم الصیام نماز بر شما فرض شده کتبه یعنی نوشته شده نه فرض شده بر شما فرض شده روزه گرفتن کما کتب علی الذین من قبلكم همونطور که بر پیشیان قبل از شما هم باجب شده بود از یهود از نصارا تمامی ادیانی که قبل از اسلام بودن برای اونها هم چنین تشریعاتی بود همونطور که نماز داشتن که موسی علیه السلام وقتی که بر رسول الله فرض میشه پنجاه بعده میاد رسول الله میگه که من امتمو امتحان کردم برو به خدا برو که تحقیق بده به تا تو اینکه نماز از پنجاه بعده میرسه به پنج بعده این تکلیفات این تکالیف دینی این واجبات شرقی در دیگر ادیان هم بوده ما فکر نکنیم که ماها فقط الزام شدیم تکلیف شدیم به این واجبات همین واجبات در امتهای پیشین هم بوده كما كتب على الذين من قبلكم همونطور که در امتهای پیشین بوده و خدام بر اونها هم فرض کرده بود روزی اونها هم داشتن ولی سخت از ما داشتن یک شبانه روز رو باید می‌ذند دیگه هرچند که بعدن خیلی از عبادتاشون تحریف شد نمازشون تحریف شد نمازشون, نمازشون چنان که یاد میکنن از یک راه رکوع و سجده داشته ولی الان نمازشون رکوع و سجده نداره چرا چون دینشون عوض تغییر و تحریف درش ایجاد دادن پس ما نباید احساس حرج احساس دلسنگی در مقابل این تشریعات کشته باشیم باید بر چشم بفتیریم سخت روزی گرفتن سخت دست شهوت کشیدن از غذا نخوردن و آب ولی که این امتحان خداونده خداوند میخواهد ما را امتحان بکنه با این تکالیف. اگر ما گفتیم که این دنیا دنیای امتحان همونطور که ما برای امتحان آماده میشیم خوب میخوریم که درسمون رو خوب پاس بکنیم اینجا هم همینطوره. امتحانات خداوندی که خدا میخواد بدونه که ما حق بندگیش رو به جا میاریم یا نه حق کلمه لا معبودا بحق الا الله رو به جا میاریم یا نه امتحانی که باید پاس بدیم اولین چیزی که روز قیامت از سوال میشیم از نماز از حقوق مردم و دیگر کتاب ما در روز قیامت سوال ازش میشیم اولین چیزی که سوال بشیم واسه نماز و دیگر ارثانی که کدام از این در روز قیامت ازش سآل به عنوان یک مؤمن اما اگر کافر باشیم که اصلا از ایش کدوم سآل نمیشیم اعمال ما هبا علمان تو راه هست پس فکر نکنیم هیچ وقت در مقابل تکالیف که ما فوق طاقت ماست ما نمیتونیم توانش نداریم نه باید توانش داشته باشیم که ما بیدار بشیم باید توانش داشته باشیم که زفاحت بدیم و, و, و توانش هم هم همینطور. خداوند از باب اینکه امتحان خودش و رقوبت خودش و در مقابل این امتحان به کسانی که به کسانی که میگن بیان بکنه، قصه تالوت رو در قرآن مثال میزنه. تالوت رو خودتون میدونید. خداوند وقتی میگه ان الله به بنها، خداوند شما رو میخواد امتحان بکنه با رودخونه. اونم چه موقع در جهاد بوده. خب خداوند امتحانشون کرد، با اون امتحان سخت، که چی؟ با وجود خستگیشون، با وجود سنگینی رفت و, و نیاز به آب و تشن الله بودنشون که بخواهد خودشون سیراب بکنن با این وجود خداوند بهشون مم کرد از اینکه آب بنوشند. الا کسی که با یک دست از اون رودخونه آب برداره تشنه الله جهاد هم بخواهد بکنن نیاز به قوت دارن مستاجن ولی که نباید آب بخوره الا من اقترد و غرفتن بیاده مگر اینکه کسی یک با یک دست آب بر, بر بداره این امتحان خداست شخص به خاطر خدا میخواد بجنگه تشنلوان هم هست خدا میگه از اون آب دوارهی که حلاله مباحه ننوشید این چیه؟ این بهش میگن امتحان هم ابتلا خدا ماهارم داره امتحان میکنه ابتلا میکنه با بیدار شدن صبح با نماز به وقتش خوندن در مسجد خوندن با زکات دادن و با روزه گرفتن خدا می‌خواد امتحان بکنه. امتحان برای چی؟ لعلكم تتقون. تقوای ما میخواد محقق بزنه. نه روزه مثلا اینجا که بحثش داریم میکنیم روزه وسیله‌ای هست برای تقوا. رسول الله صلی الله علیه و سلام در حدیث داریم کسی که میفرمایم کسی که روزش مانع نشه که او از فس دوری بکنه، از فرش دادن و از نمی‌دونم سب و دوری بکنه. خداوند نیازی به روزش نداره. فليس لله حاجه و دیگه به در دیگه. خداوند نیازی نداره که اون شخص نماز شهوتش و غذاش و آبش روا بکنه. خداوند کسی که روزه بگیره ولی که روزه سبب تقواش نشه اون روزه به درد نمیخوره. چون روزه هدف هدف از این عبادت این بوده که شخص جلو شهبتش، شهوتش از شهوت غذا خوردن از شهوت هم بزن. اینها رو بگیره. اون شخص بتونه نفس خودشو کنترل بکنه. یک تمرینی هست بر پایبندی، بر انضباط اخلاقی. روزه میگیریم که فرش ندیم، حرف فاحش و حرف زشت و دلنده ندیم، غیبت نکنیم، تومد نداریم، هدف بزن روزه اینه. بلی اگر شخصی اومد این کارها رو انجام داد، این کفتها رو انجام داد، خدا نیازی نداره که شما غذا نخودی رو روزه ند... یا آب نمیشین. یا هم بسری نبود خدا خیلی هدفش این نبوده هدفش تقوا بوده که ما متقی میشین لعلکم تتقود تا این شما متقی باشید یعنی از الله بترسید بین خودتون و بین خشم خدا پردهی ستری از ترس قرار بدید یعنی نهی که تنها روزه کل تشریعات خدا کل تشریعات خدا بند برای دوری از منکرات بوده دوری از آن چیزی بوده که خدا اگر خشمش انجام بدیم. مثلا در باره نماز بگه انه تنها عن الفحشای و المنکر نماز انسان را دور میکنه از فحشا و منترم اگر انسان یعنی نماز را باطزه داره حتما یک مشکلی توی نمازش هست که انسانی که میره دنبال منکرات، دنبال رضایل اخلاقی، اون کارهای پس و زننده اون شخص دیگه متعید، نماز در نشده که اون از منکرات باز بداره پس باید نمازش رو درست بکنه او باید, دروس باید, باید, دروس باید, باید خالطانه برای خدا بگیده که او را من بکنه از کارهای زشت و زننده و کارهایی که خدا خداوند نمیتسنده پس این لازمه ی لازمه ی عبادت ها هست که عبادت ها منجر بشن به تقوا به اخلاص در عبادتیمون در عبودیتیمون اینکه که بندگی حقیقی برای خدا باشه حقیقت بندگی را به جا بیاریم این لازمه این ساعتها عبادت هست و دلیل الحج قوله تعالى وللله على الناس حج البيت من الصفع إليه سبيلا ومن كثر فإن الله غني عن العالمين ما بين إن آية وللله على الناس حج البيت يكذب أسباب نزولهش بحر يهودي يهود ميقولش أن ما تابع من لة إبراهيم هسي خداقا أسباب الزام أسباب إنت تحرض بين مسلمان حقيقي اون کسی که اسلامش واقعی هست، اون اسلامی که خدا, خدا پسندانه هست و اسلام، اسلامی که خداوند او را نمیپسنده، خداوند حج را بر مسلمان ها کرد. اون حجی که ابراهیم انجام میداد. خداوند از باب تفاوت بین اسلام ما و اسلام اونها، که دی اساس دینشون یهود اسلام بود، ولی اسلامشون به تحریف کشفته شد، به همین خدا من دیگه هیچ‌وقت دینشون به عنوان اسلام یاد میکنه به عنوان یهود و نصارا و اونها نصارا به اسم نصارا میکنه به خاطر تحریفی که در دیما نحروی که در دینشون ایجاد شد خداوند اومد حج را تشریع کرد به خاطر همین بعد, بعد از اینکه میگه بر مردم هست ولی الله علی الناس یعنی برای خداوندی که, در... که مردم حج را انجام بدن اونهایی که استقامت مالی و بدنیشو دارن اونهایی که میتونن راهش تمامشون هست که بیان به سوی حج بعد از اون میاد میگه و من کفر الله غنی و همین یعنی کسانی که کفر دیدن امتناع بردن کسی بگه حج دیگه لازم نیست من حج انجام نمیدم. نمیدم این شخص دوتار کفر اکبر و خداوند نیازی بهش نداره خداوند بی نیاز ازش هست نیگه از اون شخص از تمامی عالمی خدا نیاز به عبادت ما نداره عبادت ما برای خودمون انجام میدیم. تا اینکه متقی باشی تا اینکه خداوند بهمون پاداش بده و ما رو وارد بهش بکنه و ما خش نبرزه یا من کفر الله دليل علی یعنی اون که این حجرا ازش امتناع میورزن بدون که اونها کافرن یعنی اونها دیگه مسلمان نیستن هیچ شبهه‌ای تو ذهنشون نیاد که اهل کتابن اینها مؤمنن خیر اینها چون از این شعیره الهی از اون چیزی که لازمه اسلامه عمدا امتناع میورزن دیگه اونها جز مسلمانو حسابشون نکنید والا هر که گفتم اگر یک شخصی میتونه تمام مالیش و بدنیشو داره و که حج نمیره از باب این نداره یا اینکه هنوز وقتش نشده اون مسئله مسئله دیگر هست که به اجماع صحابه کفرش کفر عملی هست نه کفر اعتقادی چون صحابه کاری را کفر نمیدونستن کفر اکبر نمیدونستن مگر نماز لازمه این اجماع اینه که یعنی جز نماز ترکشو کفر اکبر نمی دونستن یعنی فقط نماز کفر اکبر می ترک نماز کسی که عملا نماز را ترک بکنه و به تأخیر بندازه این خلاصه این مطالب در بحث ارکان اسلام ارکان پنجگانه اسلام که خداوند بر ما تشریع کرده توصیهی که دوستان به دوستان دارم در خطام این نیمه از درست سمود تا حالا با هم بودیم با این مد در 21 جلسه با هم بودیم و این متر رو خوندیم از سفری خداوند کسانی که با ما از اول تا اینجا بودن و کسانی که نصف راه با ما بودن بالاخره هر کسی که سعی کرده تلاش کرده برای خودش کرده نه برای من بوده نه برای کسی دیگه بوده نه کسی یه کسی پول قراره که بده نه هم قراره که به کسی نمره داده بشه. هدف ما از این جلسات این بود که حلقاتی از نک داشته باشیم همونطور صبحها مییم سر کلاس میشینیم و شاید در نفس ما ریاب بیاد یا در نفس ما دنیا بیاد که شاید به خاطر نمره اومدیم شاید به خاطر امتحان اومدین یا شاید به خاطر مدرک اومدیم این کلاس‌ها برگزار شد که ما خودمون رو محاک بزنیم. تفا... یعنی تفاوت را هم درک بکنیم که اون جایی که مثلا به خاطر یعنی شاید اگر به خاطر نمره باشه، اینجا جبرانش بکنیم لله هم بیاد که این کار خالصانه برای خدا انجام داده باشه. هرچند اونجا هم نیت اخلاص هست ولی خب برای گفتم برای محج زدن خودمون هست یعنی این هدف از این درس فقط امتحانه فقط اینی که ما بدونیم چقدر میتونیم پایبند عیل باشیم پایبند دین باشیم چقدر حب و علاقه و شوق به دینداری داریم و در دینمون میخوام با بصیرت باشیم به کسی الزام نبوده هیچ کس ما الزام نکردیم کسانی که اومدن در این جلسات شرکت کردن از رغبت دل خودشون بوده و هدفشون این بوده که اون چیزی که ما در ظاهر در حکمی کنیم هدف این بوده که خدا راضی باشه و هدفمون از اومدن به این مدرسه این بوده اساسش یعنی ما اومدیم در این مدرسه که نماز بکنیم چنانچه رسول الله میخونده قل هذه سبیلی ادعو الله على بصیره لازمی بسلات اینه این این این این که ما چنان باشیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده ما چنان باشیم که صحابه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بوده هدف از این باشه بوده یعنی ما از این درس عبرت هایی که می اینه که ما پی می بریم چقدر به درگاه الهی مقصر بودیم مثلا وقتی که لیوگی مصطلح رو خوندیم الان پی می بریم چقدر اون نمازمون ناقص بوده اون نمازمون خالصانه یا نبوده یا در متابعتش کوتاهی کردیم یا در برپاداشتنش چنان چقدر صبح می خوندن کوتاهی داشتیم ما پی می بریم و حق بنزیکی خدا را به جنایی می‌گویند. چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم اعتراف می‌کردم، می‌خزیم. پناهم می‌بردم بخدا اللهم اینی عزت بر ذکم از صحت و با معافات کمین عقوبت و عزت بکمینک. لا من علیه حق عبودیت، حق ماتش و ستایش، ستایش ترابه جابیارم. چنانچه طلا یادش حسی. این اعتراف رسول الله صلی الله علیه و سلم الله صلی الله نتونست و اینجا پی که اون هدف خلقتیمون که خدا را آفریده بخاطر اون اونم عبادت و پیامبران را فرستاده خاطر ما حق اون منت را ادان حق اون رحمتی که خدا برامون فرستاده اون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در مقابل اون رحمت حق شکر شو به جنگی از شکر نعمت رسالات نعمت اسلامی که خدا به من داده نعمت سنیبودنی که خدا به داده حق این نعمت که نماز رو درست بخونی چنان می‌خوالم که راست خونده از از سنت‌ها گرفته، نوافل گرفته و پایبندی به خود نماز، خشوع در نماز از رکوع رس و اینها این‌ها را چنان چه خدا از به جا بیاری. گفتم، بحث بیشتر از اینه. این‌ها لب مطلب، لب این درس بنده باشیم و چطور بنده باشیم چطور بنده مخلص باشیم؟ چطور بنده باشیم که از ازمون راضی خواهد شد با اون بندگیمون و بخش بر ما نخواهد داشت. واخر دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى محمد